همونطور که قبلا به اطلاع شما دوستان شنونده رسوندم تظاهراتی بعد از ظهر امروز در مرکز شهر کوپنهاگ برگزار میشه این تظاهرات علیه جمهوری اسلامی هست و در جهت محکوم کردن اعدام جوانان در ایران و در دفاع از جان زندانیان سیاسی بخصوص دستگیر شدگان اعتراضات آبان سال گذشته این تظاهرات بعد ظهر امروز انجام خواهد شد در مرکز شهر کوپنهاگ ساعت دو تا سه بعداززهر جزیات بیشتر این تظاهرات رو با آقای علی آزاد میخواهیم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با تظاهرات امروز آقای آزاد سلام عرض کردم و صبح شما به در شهر کپنک سلام به شما و شنوندگان رادیو البورز من در باسی اقتدا بگم خورده صدای شما ایکو داشت من سوال شما رو فهمیدم ولی بایستی اگر که صدای من چیز هست دوباره شروع بکنیم صدای شما خیلی خوب هست و؟ در رابط... شما خیلی میشه. نیست. صدای شما خوب پش میشه. در رابطه با تذرات امروز. اه... در به حضور شما به شما که امروز بعد از ظهر ساعت دو تا ساعت سه در مرکز شهر کوپنات در مقابل دفتر امnesty international. ما تظاهراتی رو در محکومیت علیه مجازات اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی بخصوص خصوص مترزین سیاسی و اجتماعی آبان گذشته گذاشته به صلاح سازمان دادیم این تظاهرات از طرف گروه های چپ و کمونیست و سوسیالیست به صلاح سازماندهی شده کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کتابانه پوینده و یک گروه دامارکی که در رابطه با اصول فعال هست به صلاح از حقوق پنندگیان دفاع میکنه با اموانه ما مشترکن این تزارات رو برگزار میکنیم در رابطه با در رابطه با تظاهرات امروز در جهت محکوم کردن ادامها هست که این سه جوانی که از بازداشتی های آبان ما بودن تحت سخگیری و شکنجه اعتراف اجباری گرفتن و با استقبال محکوم کردن جهانی مواجه شد که الانم چند لحظه پیش من آخرین آمار توییتی که در توییتر اعلام کرده بودند بیش از ده میلیون پونسد هزار نفر این توییت کردن محکوم کردن در این رابطه میخواستم بیشتر توضیح بدیم که بله شما به در درست رید میگید همچنان داره این تویت داره به سلا ادامه پیدا میکنه و طبیعتاً تا چند روز آینده تعداد بیشماری به سلا این تویت رو حمایت میکنن خب طبیعی هست که در داخل ایران همه امکان نیست تویت فیلتر توی ایران به فیلتر هست با وجود بخش وسیعی از اینا در از داخل ایران هست که از فیلتر شکن استفاده می کنن و بسیاری از مردم هستن که اساسا چنین چیزی رو ندارن که به استفاده بکنن یا اکونتی رو ندارن در نتیجه با همه اینا وسعت و گسترش ایرانیت و در کنار این حمایت های به فردی، از هنرمندان و جمعی، حتی از فیلمسازان، قانون نویسندگار، قانون بسیلا مدافعان حقوق بشر، تشکیت گارگران به تادیه شرکت باید اوتوبوس رانی و درخواد تشکل و سنفی و سیاسی و فرهنگی، از این کمپین دفاع کردن به شکل علمی وارد شدن و مصاحبه کردن با نشریات با تلف، تلویزیون های داخل خارج هر امکانی که برای اونو فراهم شده بود صدای مخالفت و اعتراض خودشون و علیه این احکام به خصوص این احکامی که در قبال این سه جوانی که در اعتراض آبان ما دستگیر شدند اعلام کردن طبیعتا این در برگیرنده همه این افراد هست همه کسانی که در داخل زندان هستند، و این به نوعی یک رفراندوم یا یک نوع سنجش افکار بوده که مثلا افکار ایرانیان در داخل خارج افکار بین المللی این روش جنایتکارانه دولتی به عنوان خشونت دولتی علیه شرگندان ولو حتی این که مثلا جنایتکار باشن رو محکوم کردم مجازت ادامی در قتل اند هست قتل دولتی هست و باید این بچیده بشه این خب بزرگترین دشتاوردی بوده که توی این دوره دادم ما شاهد این هستیم خوشبختانه نستیم ببینیم که چی مردم در قبال یه چنین چیزی واکنش بر برعکس بعضی از مثلا افرادی که ناامیدانه به این مسئله نگاه میکنن گاهی وقتا میهن که برای وقتی داره کسانیقه ادام میکنن بخشی نشستن داره تخمه میخورن چه تگرفتن تماشا میکنن این نیست بخشی هستن که مزدور هم بخشی هستن که نمیفهمن خب ده این مثلا طوفان تویوتری به اعتراضات علمی آشکار در سطح جامعه نشون داده که اعدام به عنوان مجازات به صلاح و دولتی به عنوان جنایت دولتی در ایران محکوم هست و جایی رو در بین افکار عمومی در زندگی مردم نداره این به دکترین دستاورد به نظر من هست و این امیدواری برای همه مدافعان و بشهر سیاسی و که مخالف اعدام هستند، اینکه نویدی رو میده که میشه جامعه روز داخت که درش اعدام، زندان، شکنجه برچیده بشه و یک زندگی مثلا همراه با آزادی های اجتماعی سیاسی تزمین شده باشه در رابطه با تزارات آبان سال گذشته برخی گزارشات اداد جانباختگان و 1500 تن اعلام کردن ولی به طور رسمی از جانب حکومت اسلامی طبق معمول سنت خودش تعداد جانباختگان رو هنوز اعلام نکرده به طور رسمی ولی از بازداشتی های آبان سخگیری و شکنجه و تحت شکنجه اعتراف اجباری میگیره حالا قصد جمهوری اسلامی تو این شرایط بحرانی کرونا، بحران اقتصادی چی هست که هنوز گیر میده به بازداشده های آبان ما بگیرید اعتراضات آبان ما در صورت یک جمعه از به صلاح ناخوشنودی مردم اعتراض مردم حتی به شکل به انقلابی به شکل رادیکال که خواهان برشیدی شدن این نظام بودن و به نمایش گذاشت و هزاران در هر شهری، در هر محله اومدن بیرون و به این مسئله اعتراض کردن همونجوری که شما عرض کردید در صورت این مسئله جنبه به گسترده ای از دستگیری و مجازات و اعدام و شکنجه و سردریز کردن و زحم شدن و کشتار وسیعی رو توی فیابانو انجام دادن خب اینا همه نشوندنده ای این بوده که جمهوری اسلامی در صدد این هست که این مثلا شورش خیابانی نارضایتی رو سرکوب بکنه چون حقیقتش این هست که راه رو برای حل مشکلات و که به وجود آورده خودش هم برش رخ شده نداره در نتیجه راه بومبستی رو بینه و در نتیجه اونها حاضر نیستن که به صلاح به, به راحتی یا به شکل مسالمت آمیز کنار بدن اونا تا آخرین لحظه حاضر هستن وامیستن و میدونن که واقعا و وخیمی هم برای خودشون داره هم برای جامعه اما هم به،, به صلاح چنین کاری رو نخواهند داد حتی به استاد طلبوان داخلی هم این امکان نخواند داد که بتونند مثلا روزنه ای رو به به حالت به انتظار یا حالت وقت خریدن رو به اصطلاح برای جمهوری اسلامی تلاش بکنن در نتیجه بیماری کرونا خب طبیعتاً و به اصطلاح در میون این همه اعتراضات و خشم و غروش مردم به وجود اومده خوب بیماری هی هست که خطرناک است مردم وزید به اینترنت، به تلویزیون‌های خارج، به جاهای دیگه دست اطلاعات اطلاعاتو میدونن، خطر این بیماری رو به صورت درک میکنن. اگرچه به بسیاری به خاطر شرایط زندگی، به خاطر معاشات، به خاطر امور روزانه خودشون ناگزیر هستند که چی این دیسکو بکنن برن برای به اصطلاح از قحطی و گرسنگی به مخاطره کرونا رو بپذیرن. اما صورت این کرونا مثل همه بلاهایی که به وجود اومده، همه مصیبتایی که اومده، خان نعمتی بوده برای جمهوری اسلامی. فرجهی بوده برای جمهوری اسلامی که از این مسئله استفاده کرده و دوباره شروع کرده به قدر دوباره شروع کرده به عربت کشی توی خیابون، دوباره شکنجه، اعدام، اعترافات تلویزیونی و غیره سازمان بده. خب نتیجه رو داریم نیدینیم به بخش وسیع رو آبوردن به صورت به سلاح تلویزیونی و اعترافات داخل زندان و غیره دارن به نمایش میذارن همه این بازی مسخره چیزی چیزی به سلاح وچه سیاسی یا بوحت یا حتی اوتوریته جمهوری اسلامی افسوده می میکنه فقط سرخوردگی و مثلا ضعف و زبونی رژیمون نشون میده می دیروز یا پردیروز بود که باز همین جده دانشوی مثلا اولمپیای ایران رو بردن در کنار استاد و دانشجویان و تشکلات دانشوی به چارمیخ نشیدن و به قول معروف در حضور اصفادید و همکلاسی هایش رو محاکمه کردن بازجوی کردن و به نکاس این خبر رو امروز دیروز به قول معروف توی سوسیال میدیا توی حتی داخل بسراتش اکلات دانشوی وابسته به رژیم این مسئله رو کی محکوم کردن که این روش بس بسیار کسیفی هست که شما دانشوی رو بیارید در به به کنار اسادی حتی ولو مزدور هم این روش روش بی نهایت شرماور و به صلاح تحوواور هست در نتیجه همه این ها نشوندنده این هست که جمهوری اسلامی از جنبش دانشجوی میترسه از جنبش کارگری میترسه از جنبش زنان میترسه از جنبش داخل زندان میترسه زندانی که منوان اسیر هست شما دارید ببینید. بسیاری از فعالین بشر فعالین سنفی، فعالین سیاسی که داخل زندان هستند به صلاح یه شرایط سختی زندگی میکنند خانوم نرگس محمدی بارخواه این داده که به صلاح مقتلاب کرونا هست، مقتلاب بیماری های به صلاح خطرناک دیگری هست. با این وجود نه دکتر، نه دوار، نه درمون، حتی ها اعتراضات قبلی حتی اینا را به صلاح به صورت غرانتین هم نکردن خانوم باید زینت جلالی هست که سالهای سال در زندان هست اون هم به بیماری کرونا شده مبتلا شده به این بیماری در نتیجه حتی داخل زندان هم ترسوانه در خارج کشور که خب جای خود دارد که نه فقط مثل موشی هستن که تو شراخ خودشون هستن شروع به جاسوسی و این در روبر و توتهه و لابیگری و اینها کارشون هست در نتیجه جایی نه در میان مردم داره نه در میان جامعه بین المللی داره نه در میان افرار عمومی داره تنها و تنها اصلای سلاحی هست که در دستشون هست زندان و شکنجه ابزاری هست که در دست اونا هست و بقیه مردم گروگان و اسیر این بلسنا رژیم جنایت هستند در نتیجه طبیعی هست که در رابطه با این مسئله و مسئله مختلفی که به وجود میاد به خصوص این که مشکل کرونا و مشکل اقتصادی جامعه به سلاع و امجاری نزدیک میشه که این برای اونا این زنگ خطری هست و هر گونه عقب نشینی سبب مرگ و نابودی هست. در نتیجه آخر بازی اینا میخوان ادامه بدم این جای به اصطلاح معجب نیست چیزی که جای تعجب هست این هست که اپوزیسیونی هستی به اصطلاح تلاش بکنه که فضا رو فضای بسیار سیاسی بکنه فضای امیدوار کنن ایجاد بکنه فضای نوید خوشی را بده از آزادی از برابری لغو مجازات اعدام نه این فقط با چهار تا شعار خوشک خالی زندباد باد بلکه با مطالبات خودشون بتونن نظر مردم افکار امی رو جلب بکنن متاسفانه در این رابطه بخشی از اپوزیشون فقط زندباد و باد و عکس این رو هوا کردن و فیل هوا کردن در روحه میخوان مردم رو دوباره تجربه ی پنجه هفت رو تکرار بکنند و مردمی که آزموده و قول معروف چی میگنی آزمودان خطاست بس از این بار این چیزا رو نمیره و در نتیجه این سترونی بخشی از اپوزیسیون هست که به سلال نمیتونه در قبال مسائل مطالباتی جامعه تلاش بکنی این تسکل های داخل کشور هست ولی بله من این ده ده دکتر مرز بکنم خود برکم که داخل کشور تشکلاتی که شکل گرفته محور مثلا اعتراضات هست محور تکیگاه جنبش هست و نوید خوشی را میدشت ما نگاه بکنید کمیتی مثلا فعالیت او بشه فعالیت محیط زیست تشکل های به سلارد مدنی و همطور تشکلات کارگری تشکلات مثل کانون نویسندگان، کانون سینماگران، کانون هنرمندان، همه این ها در این رابطه بخصوص توی این واقع خیلی فعال بودن و نشون دادن که میتونن به سلا امیدی رو در جامعهی که با سرکوب و به صلا و شکنجه داره به صلا ما امیدی نمی کشونه میکنه رو امیدوار کننده میکنه و راه نوینی رو در جنبش به در نوینی رو حکشایه بله در خاتمه برگردیم به شهر شما کپنهاگ که از شما میخوام که یک بار دیگه آدرس محله برگزاری تظاهرات و, و ساعت شروع تظاهرات رو اعلام بکنید میشه. بله به امروز بعد از ظهر ساعت دو تا سه در مرکز شهر هست مقابل دفتر amامnesty اینترشنال هست گل توه اونجا هست که به سر شناخته شده هست و بارها به ما موجود تظاتهایی در صاله او بشر یا زندانیان سیاسی اونجا برگزار میکنیم و امیدواریم که به به دوستان، عزیزانی که در کوپنهاک هستند چون این امکان برای همه نیست که سراسر دامارک شرکت بکنند کسانی که در دامارک، کوپنهاک هستند در شرکت بکنند ما این مسئله این هست که افکار عمومی که به سلاح توی مرکز شرد به حل رفت آمد هستین ها ما به این مسئله ای اعدام به متوجهشون بکنیم و بخوایم که از این کمپین اعدام متوقف بکنید حمایت بکنم و انبستگی خودشون رو با جنبش سراسری که علیه اعدام بپاخسته به صلاح اعلام بکن. خیلی سبازگذارم جناب آزاد که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید من از شما سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید برای شما و شنوندگان شما ویکند خوبی آرزو می کنید